بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله صلَّا و سَلَّم علی الله و بعد حدیث 21 کوم از منشل حدیث دو می فرمیم رسول الله صلی الله, الله علیه و سلم ابرد بالظهر از آن سونه نبنا مواجهت ابرد بالظهر ابراد یا همون خونکی اصل برد از سردیه ولی خوب اینجا منظور به تأخیرن انداختن وقت نماز ظهر هست مقصود حدیث که وقت نماز ظهر رو به تاخیر بندازیم از اول وقتش که بعد از زوال هست و شدت گرما هست برای اینکه نماز با خشوع برگذار بشه و انسان بدون چی میخونه شرعی مسئله رو در نظر گرفته و اینو باید بدونیم که وقت ظهر وقت اصراری نداره وقت ظهر وقت اختیاریه یعنی شخص میتونه بخونه نماز ظهر تا وقتی که ساگی یه چیز به دو برابرش برسه که همون وقت نماز اس هست یعنی تو وقت وقت نماز ظهر رو میتونی از دخول وقتش تا نماز اس بخونی برخلاف نماز عصر نماز صر وقت اختیاری داره اصراری داره رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا نهی کرده از اینکه در وقت سراری یا به هنگام اسفرار خورشید یا همون هنگام زردی خورشید نماز از خونده بشه مگر اینکه آدم حالا حاجتی ضرورتی چیزی باشه نتونه ولی کن وقت نماز هست شاید مثلا بتونیم از دخول وقت تا یک ساعت بعد از اونه تا وقتی که خورشید زرد نشد یا یک ساعت و نیم دو ساعت حالا بسیگی داره چون تابستون زمسون بین است و مغرب فاصله ها عوض میشه ولی خب بحث اینی که نباید به تاخیر انداخته تا اون موقعی که مثلا خورشید زر شده وقتهای نمازه انسان باید مراعات بکنه مثلا وقت نماز مغرب تا غیب نشدن شفقه نه اینکه مثلا بعضی ها مثلا هم بالفرز میگن که خواهم وقت مغرب تا نماز اشاز خیر اشتباس وقتی که ما گذاشتیم اونایی که منجمن یا مثلا اومدن حرکات خورشید را در نظر گرفتن وقت گذاشتن تقریبی گذاشتن یک ست یک ساعت و نیم بعد از مغرب. و چون وقت نماز عشا هم طولانی یعنی انسان میتونه به تأخیرشون اندازه و رسول هم توصیه کرده که نماز عشا را به تاخیر بندازیم ولی اینکه نماز مغرب به تاخیر انداخته بشه 40 50 دقیقه بعد از اذان بعد از دخول وقت بعد از غروب خورشید این اشتباهه اون وقتی که وقت عصرانی نیست اون وقت نماز باطل چون وقت نماز عشا ما فقط در نماز عصر اختیاری و ریل داریم دیگه تو نماز مغرب نیست یعنی اگر شفق غیب شد شفق رفت اون قرمزی که بعد از غروب خورشید میمونه اگر دنیا تاریک شد به قول معروف یعنی نیم ساعت 40 دقیقه نهایتش دیگه اون نماز دیگه از وقت عداش خارج شده و ما چیزی به اسم قضا در شهر نداریم اما وقت نماز عشا که تا نصف شب هستا می تو تا 11 وه بخونه حالا اون مسئله مسله دیگه ال من نمی خوام درباره و اوقات نماز صحبت بکنم و چون هدف هم توی این شلز حیث فقط بیان یان معانی حادث و خیلی شرح ح کوتاه نمیخوام اختلاف و احناف تو گفتن جمونور رو تو گفتن فقط بحث این سنت از خصوص الان تو تا به و این سنتته حال آیا انسان چون سروقت می خوم میتون منزل بخونه خیر نموزد و در جماعت خونده بشه. الان الحمدلله اون حاجت اون ضرورتی که قبلا بوده و اون گرما دیگه الان ایستان الحمدلله مساجد همه کلر دارن و انسان میتونه در وقت خودش بخونه. همون اول وقتش بخونه. ولی خب گفتم وقت اختیاری جایی که میتونن مسجد با جماعت یا کلرینه ندارن یا مثلا رفتن به مسجد سخته میتونن وقت نماز زهره تا نزدیکی عصر به تأخیر بدن ولی خب وقت نباید وقت اصل داخل بشه. و اینم خلاصه این حدیث. Allah هرچند در بعضی از طریق این حدیث اومده که رسول صلی اللہ علیہ وسلم می فرمایه فا شدت الحر می فیح جهنم گرمای تابش خورشید از غلیان آتش جهنمه یعنی اونو آتشی که از جهنم داره برپا میشه شه داره, داره به زمین می رسه پس سنت اینه که نماز رو در وقت خنوخی بخونیم اولا عموم حدیث اون چه که از اصل حدیث برداشت بیشه که مؤمن عن هدف این حدیث مغز این حدیث این که مؤمن نماز به این باشه که حواسش سر نماز پرد نشه لل... واقعا لله و خالصانه برای الله بخونه